ذکر حجرات ازواج النبی رضی الله عنهن و علی نبینا صلی الله علیه و وسلم الفتحیه ذکر این حجرات تو این سوره احمده بین خاطر این سوره سوره حجرات است تسمیه کل باسم جزء اما این سوره هم از سوره های مدنی هست از نظر ترتیب یک و دومین سوره هست که بر آن حضرت صلی اللہ علیه و نازل شد مناسبت این سوره و ربط این سوره با سوره گذشته این هست که در سوره فتح ما خاندیم خداوند فتح نصیبشون میکنه. نصیبتون میکنه قبل از اون در سوره محمد بحث جهاد بود شما اگر جهاد کنید فتح خدا میده بعد از این که فتح خدا بده باید قوانین را دستورات نظم را اجرا کنید تو این سوره بیشتر نظم و قوانین باید میشه دستورات مبنی بر این که چطور منظم باشید چطور قانون را رعایت کنید چطور احترام حاکم را داشته باشید کسی که در رأس هست با هم دیگه چطور باشید لذا قوانین مختلفی که تقریبا هفت تا دستور هستند الله تعالی در این سوره بیان می‌فرماید. این بخش اول سوره بخش دوم سوره که از قالت الاعرابو شروع میشه از اونجا زجر هست بر اعراب بر دهاتیها با نقل قول که اونها بعضی از اقوال اونها صفاتی بیجا و بی ربط اونها را زکمی فرمود بر اون رفت بیام. لذا در بخش اول صورت هفت قانون هستم. از این هفت قانون دو تا قانون مربوط به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اعضاء مجلس رسول الله و آداب این که در حضور رسول الله باشی، چگونه که رسول الله پیامبر خداست و فرستاده خداست، باید چگونه شما در مقابل رسول الله باشید. الله فرماید یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله. این مؤمنین پیش قدمی نکنید. لاتقدمو یعنی پیش قدمی نکنید. در محزور خدا و رسول خدا. منظور از این که پیش قدمی نکنید یعنی چی؟ یعنی مخالفت نکنید. در محزور رسول الله وقتی هستید، ایشون یک چیزی مشوره میده، یک چیزی میگه شما مخالفت نکنید. چنانچه اللهم آلوسی نوشته. المراد النهي عن مخالفة الكتاب والسنة مراد اين مخالفة كتاب والسنة نكونيت بس اگر مراد مخالفة كتاب والسنة نكونيم هست امروز هم حكم ان دستور اين ظابط متوجه ما هم مشه اي مؤمنين لا تقدموا بيش قدمي نكونيت در محظر الله ورسوله واتقوا الله إن نسخي عمل هست. خدا تعالی بسیاری جها تجویز می فرماید و حکمی صادر می فرماید بعد از صدور حکم نسخه اشراهم بیان می فرماید که اگر این نسخه را استفاده کنید اون وقت می تونید عمل کنید نسخه عمل چیه؟ واتقالله کسی از خدا بترسد او مخالفت نمی کند کسی از خدا بترسد او لب نمیگو شاید در محضر رسول الله و اتقو الله ان الله سمیع و نعلم بعضی جهه برای تقوه هم خدا نسخه بیان فرموده این بعض نسخه تقوه است همانا الله سمیح است هر سخن را شنواست و هر حرکت را الله تعالی داناست هر سخنی که شما میگوید خدا میشنواد هر عملی می‌کنی خدا می‌داند وقتی که من و تو بر این باشیم قطعا از خدا می‌ترسی پس صفات خدا وقت ذکر میشن اینها نسخه تقوا هستند یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي این قانون توهم است ای مؤمنان صدای تون رب نکنید بر صدای رسول الله صدایتون را در مقابل صدای رسول الله هیچ وقت بلند نکنید وقتی که رسول الله این تعلیم عدب گفتگو با آن حضرت صلی الله علیه وسلم و, و میتونیم بر رسول الله قیاس بکنیم بقیه کسانی که همین بزرگی را همین از کنم جایگاه گرچه جایگاه رسول الله را هیچ که ندارد ولی خب نسبت به ما کسی بزرگتر است استاد است پدر است شیخ است در محظر او هم نباید صدای ما بلند بشه یا صدای او را ببریم بعضی ها بیپروایی می کنند آداب را رعایت نمی کنند و حتی در مقابل پدر مثلا نشسته چنان قحقحه چنان صداش بلند و چنان از بخدمت شما که حرکات و اذابی از صادر میشه که خلاف ادب است لذا الله می لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول و ایشون را به قول جهر نکنید یعنی به قول جهر نکنید یعنی ایشون را خطاب نکنید که جهر بعضکم لبعض مثل خطاب کردن بعضیتون بعضی دیگر را ببین چند مفهوم را این بیان کردند همه تفاصیل درست هستند یکی اینه که ایشون را صدا نزنید همونطور که همدیگر را بلند صدا می زنید مثلا شما هم دیگر رب نام صدا می کنید احمد، محمود، عبدالله به این نام ها ایشون را نه کما لا تنادوه کما ینادی بعضکم بعضا بان تخاتبوه باسمه و کنیته با نام صدا بزنید یا با کنیه نه بل یجب علیکم تبجیل و تعظیمه تبجیل و تعظیم ایشون واجب است ومراعاة عدبه در محذر شون عدب را رعاية تكونين وخفظ الصوت بحضرته صدايتون را پاين بيارد در محذر شون وخطابه بالنبي والرسول ونحو ذلك مثلا يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله با این القام ناينك يا محمد ببوئيت همون طرق هم ديگر را صدا ميزنين اي را با اون نام صدا نزنی بعضی این گفتن بعضی گفتن نه صدایتون را جهر نکنید یعنی وقتی که با ایشون صحبت میکنید کنید را بلند نکنید خب این که گزش لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی نه اون چیزی دیگه هست این چیزی دیگه هست اون چیه کانه قیل لا ترفعو اسواتکم فوق صوته اذا نتق و نتقتم وقتی هم رسول الله صحبت میکنه هم شما صحبت میکنید شما وسط صحبت ایشون نپرید صدایتون را بلند نکنید ولا تجهروا له بالقول اذا و وتكلمتم وقتی که ایشون ساکت است و شما داری صحبت میکنید شما چکار کنید شما بلند بلند صحبت نکنید آهسته آهسته صحبت کنید عدب را در سخنان خودتون حتما رعایت کنید این خاطر این هست که ما بعدا صدای بلند شما باعث اسیت و آذار رسول الله صلی الله علیه وسلم بشه و این اذیت و آزار اگر قصدن باشه که گفره کسی پیغمبر خود را قصدن عزیت کنه کفره اگر غیر قصدی باشه اشتباه هست لذا شما این نکات را رعایت کنید زمی‌فرماد: یا أيها الذين آمنوا، أي مؤمنان لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بل بر صدا رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که هم شما و همیشون صحبت صحبت میکنند ولا تجهروا له بالقول وقتی که شما تنها صحبت میکنید و ایشون گوش میکند شما بلند سخن نگویید که جهره بعضكم لبعض مثل بلند سخن گفتن بعضی به بعضی ان تحبط اعمالكم از اینکه اعمال شما حبط و نشه تا اینکه اعمال شما ضایع نشود و لا تشعرون در حالی که شما نمیفهمید که اعمال از بین رفت و بعد خدای تعالی ترغیب به حفظ میده تبدیل به پستی صحبت به پایین آوردن صدا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله همانا انهایی که پایین میگیرن صداشون را نزد رسول الله اونهایی که ادب را رعایت میکنن اونهایی که احترام در قلبشون است اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا این افراد کسانی هستند که امتحان الله الله قلبشان را پاکیزه و ناب داشته امتحان الله قلوبهم خداوند از و دلهاشون را چیکار کرده؟ خالص کرده پاکیزه و ناب داشته یعنی خالص کرده برای چی؟ برای تقوام بعضی دیگر ترجمه های زوقی زیاد میکنه خداوند قلبای نارا سیقل زده سنباده کشیده اصل اینه که امتحان میگم فشردن را پاک کردن را خدا قلبای نارا پاک کرده از تمام آلائشات بدور کرده و قلبها اینها را ظرف تقوی تاین کرده. اینا قلبشون پاکه که اینطور صدایشون پایین هست و صدایشون عدب گونه هست. اولئیک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوی فرق امام لغت اسمی فرمد ای اخلصها للتقوی خدا این دلها رو خالص برای تقوی انتخاب کرده ابن عباس رضی الله عنه ممی فرماید وقال ابن عباس طهرهم من کل قبیه از هر قبیه و زشت خدا دلها رو را پاک قرار داده و جعل فی قلوبهم الخوف من اللہ والتقوی تفسیر قرطبی پس این قلبها چنین جایگاهی دارن چنین شأن دارد لهم مغفرة وأجر عظيم براي أفراد مغفرت هست بخشش هست و و باداش بسيار عظيم هست إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون خداون مفرمايت أنهايك شمارة صدامي زنة أزبشت حجرات از پشت حجرها این در رابطه با افرادی از بنو تمیم هست بعضی ها اعرابی نمی نمیدونستان آداب را بلد نبودند به وسیله این سوره آداب را یاد گرفتند عمدا از پشت حجره صدا می زدند یا محمد اوخرج لینا محمد صلی الله علیه و اسلام بیروم بیا کار داریم این را خدای تعالی سوی ادب میگوید این بی ادبی است میفرماید اکثرهم لا يعقلون اکثر اینها جایگاه شما را نمی دانند لا یاقیلون چه چی چیزی را نمی دونند جایگاه شما را خب اینجا بحث حجرات آمد حجرات جمع حجره است حجره اون خانه های مخصوص رسول الله صلی الله علیه و وسلم اونها را درست کردند اختصاص دادند به ازواج متحرات و در حیات به اونها بخشیدند اینها همیشون ردیف بودند کنار هم بودند و اونطوری که در وصف این حجرات آمده اینها هر یکیشون پنج در هفت بود پنج زراع در هفت زراع یعنی تقریباً پنج زرا در هفت زیرا از هفت متر کمتر میشه از پنج متر کمتر میشه یک آلونکی بود و همین اندازه حیاتی داشت یعنی یک اتاق بود و یک دالانی بود به اصطلاح حیاتی داشت هر یکی از اینها را که بسیار مختصر بود آن حضرت صلی الله علیه وسلم اختصاص داده بودن به همسران خودشون هر همسری را که ازدواج می کردن. این حجره هم مال او بود و به او اختصاص داشت این کنار هم بودند، ردیف هم بودند و آن حضرت صلی الله علیه و همیشه در این حجرات بودن صحابه وقتی که می آمدن کار داشتن چون اینا متصل بودند بودن با مسجد النبی لذا در مسجد قرار میگرفتن و از حجره که خارج میشدن مستقیم وارد مسجد شدند اما در زمان خلفا این حجرات نیاز پیدا شد که اینها را به توسعه مسجد مسجد النبی اضافه کنند لذا دستور دادند که این حجره ها این زمان از واج متحرات وفات کرده بودند و رفته بودند اما اینها به عنوان یادگار بود. یادگارهای از زمان رسول الله و همسرانش که اینها زندگی میکردند و اون آثار هنوز اینجا بود هر وقتی که این حجرات را می دیدند دلشون گرم بود بیاد اون زمان می افتادند اون زمان را یاد میکردند اما وقتی که برای توسعه مسجد نیاز شد که اینها خراب بشه اون روزی که دستور تخریب اینها صادر شد و اینها یکی یکی خراب شد به قول معرخین در مدینه زلزله بپاش شد چنان مردم گریه می چنان ناراحت بودند که آثاری که از آن حضرت صلی الله علیه و سلم به جام بود اینها رفت در توسعه مسجد لذا همه اینها در توسعه رفت و الان اینها جز مسجد النبی هستند و اینجا که قبر مبارک رسول الله صلی اللہ علیه و سلم هست این حجره اولین حجره هست حجره امو المومنین عائشه رضی الله تعالی عنها بود که آن حضرت صلی اللہ علیہ بعد از اینکه که وفات کردند معمول همین است که انبیاء هر جایی که وفات میکنند همون محل قبرشون است لذا انجاره به عنوان قبر رسول الله قرار دادند در حجره امو المومنین عائشه رضی الله عنها دفن شدند لذا این داستان حجرات بود که اینها الان جز توسع مسجد هستند داخل مسجد هستند شما که تشریف ببرید خداون نصیب بکنه بکنے اون جہا نماز بخانید گویا داخل حجر داری نماز بکنید این همون محل حجرهاست کلان جز مسجد است. الله می فرماید اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ همانا کسانی که شمارا صدا میزنند از پشت دیوارهای حجره اکثرهم لا يعقلون اکثر اینها جایگاه شمارا می دانند ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لکان خيرا لهم اگر اینها صبر میکردند حتی که شما خارج بشی به سوی اگر صبر میکردند لکان خیر لهم این برایشون بِهْتَر بُود وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ التَّغَيُّب بِسُيُوتُ التَّوْبَةَ هَسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَفُورٌ هَسَ بَخْشَائِنْدَهَ هَسَ وَاللَّهُ تَعَالَى مَهْرَبَانَ هَسَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ إن قانون در این قانون سوم اینو می که شما مسلمانان و همچنین حکام مسلمان نباید از یک خبر خبر کسی که فاسق هست متأثر بشید و فوراً اقدام کنید قبل از اینکه اقدامی صورت بگیرد قبل از اقدام بررسی بکنید بعد از اینکه بررسیتون کامل شد بعد اقدام بکنید این هم یک، یکی از قوانینی هست که واقعا برای عدل و عدالت و انصاف خیلی مؤثر هست ما گاهی به خاطر خبری کسی که به ما کوچکترین خبری میده اقدام میکنیم درگیر میشیم با هم دیگه بد و بیراه میگیم بعدا پشیمان میشیم میبینیم اون خبر از اساس دروغ بوده این تمامش سوی تفاهم است یه گاهی دولت مردان افرادی را به خاطر گزارشات یک فرد میگیرند یک فرد که این فردی که گزارش میده و به دروغ گزارش میده فاسق است به خاطر گزارش یک فرد میگیرند و چقدر کتکش میزنند چقدر شکنجش میدن بعد از مدتی دو ماه سه ماه میگم ببخشید اشتباه شده لذا نباید این اقدام را بکنند باید قبل از اینکه اقدامی انجام بگیرت بررسی بشه تحقیق بشه تمام جوانب را در نظر بگیرند و بعدن اقدام بکنند این قانون بسیار قانون اثر گزاری هست اللہ عز و جل می یا ایوها الذین آمنو ای مؤمنان انجاکم فاسقم بنبعن. اگر پیش شما بیاید یک فاسقی بیاورد با باید تعدی هست. ان جا فاسق بن بن اگر فاسقی خبری را بیاورد فتبینوا بررسی کنید جستجو کنید تحقیق کنید ان تصيبوا قوما بجهاله ای لا ان اصلی اصل شست. یا من ان تصيبوا بررسی کنید بخاطر چی من ان تصيب تا اینکه برسید به قومی از روی جهالت یعنی به قوم ضربه بزنید از روی جهالت نادانی نمی دونید على علا ما فعلتم نادمین بگردید بر آنچه که انجام دادید پشیمان پشیمان بشید نا این کار را نکنید ببینید ارز بخدمت شما که در باره این آیه و شأن نزول این آیه یک داستانی ذکر میکنند که اول من اون داستان را خدمت شما بگم یک صحابی که اسمش ولید من عقبه رضی الله عنه است این ولید برادر سیدنا عثمان رضی الله عنه است اما برادر ناتنی عثمان من عفان است این ولید من عقبه است مادرشون یکی بود این ولید می گوین در این شأن نزول که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در سالی که بنی مستلق ایمان آورد تقریبا سال پنجم هست یا ششم ششم هجری این بنی مستلق را گفت که در زمان زکات و صدقات من نماینده می فرستم شما زکات اموالتون را بدهید. اونها گفتن خوبه. اونها آماده شدن که زکات اموالشون را بپردازند. در همون ما مو... کنم که موعد آن حضرت صلی الله علیه و سلم ولید ابن عقبہ را فرستادن. ولید ابن عقبہ از گذشته از قبل از گذشته دور با اونها اختلاف داشت. و با اونها عداوت داشت. اختلاف و دشمنیش دیرینه بود. و ولید می ترسید که پیش اونها بره. گفتی وقتی اینها تصفیه سب نکنند مرا از پای در نیارند. به طرف اونها رفت و البته اینجا روایتهای زیادی هست. و این همه روایتها روایتهای تفسیری هست. در بعضی روایت هاست که اونها منتظر بودند ولید وقتی که رفت اونها دیدن که از دور سواری پیدا هست و موعید را می گفتن که این فرستاده رسول الله است اونها به استقبالش از ده خودشون از رسته خودشون آمدن بیرون ولید وقتی که اونها را دید احساس کرد که اونها قصد جانی مرا دارند از اونجا فرار کرد برگشت و اینجا آمد گزارش داد که یا رسول الله اینها میخواستم منو بکشند ان حضرت ناراحت شد و مشوره کرد که چرا چکار بکنیم با اینها صحابه گفتم بجنگیم اینا اتما مرتد شدند اما ان حضرت خالد ابن ولید را با گروهی فرستاد شما برید اول بررسی بکنید اول تحقیق بکنید این یک روایت در روایت دیگه هست که ولید تازه وقتی که رفت در راه در مسیر هنوز نرسیده بود کسی به ولید گفت اون کس الان معلوم نیست کیه به ولید گفت که اینها قصد دارند تو رو از بین ببرند تو میری به طرف اونها اینا قطعا تو را میکشند ولید از اونجا برگشت ولید وقتی که از اونجا برگشت این گزارش را داد این دو نوع رواید بعد خالد که رفت بعضی روایت ها اینجور هست که اونها تمام اموال که مربوط به زکات بود چه شطور بود چه گزفند بود همه را برداشتم با خود داشتم می آوردند در مسیر با خالد برخورد کردند خالد گفت که کجا میری گفت که اینها صدقات هستند زکات هستند در محضر رسول میخوایم ببریم اون کسی که رسول الله وعده کرده بود نیامد روایت دیگه هست که خالد رضی اللہ تعالی رفت رستاشون اونجا که رفت دید که خبری نیست اینا آمادین که زکارتشون را بپردازن علا ای حالین اینجا شد که این مشورهی که بعضی دادند که باید با اونها بجنگیم این مشوره مشوره بوده بدون بررسی بدون تحقیق از روی احساسات این خداوند تذکر داده بعضی این شعن نزول را بیان کردند خب دقت بفرمایید یا ایوها الذين آمنوا انجا اکم فاسق به نبین ای مؤمنان اگر پیش شما فاسقی خبری آورد فتبین و بررسی کنید تا که نرسید به قومی از روی نادانی پس بگردید آنچه که انجام دادید نادم و پشیمان یعنی بعدا بر اساس این خبر شما اقدام بکنید بزنید بکشید ببندید بعدا پشیمان بشید نه قبل از اقدام بررسی و تحقیق بکنید خب حال این آیه را بعضی ها بر علیه صحابه یک مستمسک و یک دلیل قوی برای خودشون قرار دادن این بعض که با صحابه مشکل دارند و کلا با یاران رسول الله مشکل دارند اینا میگویم ببین قرآن گفته فاسق معلوم میشه که صحابه علی اعزبالله فاسقند چون قرآن اونها را فاسق گفته لذا در این رابطه میخواستم اینجا چند نکته خدمت شما عرض کنم اولا، ما اهل سنت معتقدین که الصحابه کلهم عدول صحابه همه عادلند به این معنا که دین از جانب صحابه به مار رسید قرآن از طرف صحابه به مار واسطه ما واسطه تمام امت و رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه هستند اگر کسی بیایت صحابه را مجروح بکند صحابه دارای اشکال بشند اون دینی که صحابه به ما اون دین دارای اشکال میشه لذا چون که هر جا از صحابه تعریف میکنه هر جا کلمات تمجید درباره صحابه هست رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم اونها را معیار حق می نامد، قرآن هم اونها را معیار حق می نامد که عرض می کنم خدمت شما لذا بر اساس این اهل سنت معتقد است صحابه تمام عادل صحابه فاسق نیستند اما این عادل بودن به این معنی هست به این معنی نیست که اونها گناه نکردن نه معصوم نیستند انبیا فقط معصومند صحابه گای گناه از اونها صادر شده اما اصطلاحی ما داریم به معنی محفوظ خدا صحابه را محفوظ قرار داده یعنی بعد از گناه خدا بخشیده و اونها محفوظند از گناه محافظت شدند خب اونها وقتی که محفوظ هستند اگر خطایی از اونها لغزشی از اونها سرزده چند جریان هستند هی بعضی ها همین ها را میچرخونه میخواند کل صحابه را جریهدار بکنه یکی این جریان یکی اون جریانی که صحابه به اشتباهی کرد گفتی رسول الله. مرا پاک بکن من چنین اشتباهی کردم رسول الله دستور داد که بالاخره حکم خدا را و حد خدا را بر او اجرا بکنند خب این یکی دوتا جریان در کل هستند ما گفتیم که صحابه پاک نیستند معصوم نیستند اما خدای عزواجل اونها را بخشیده خدا تعالی اعلام رضایت کرده اعلام مغفرت فرموده اعلام بهشت فرموده شما چرا ویل کن نیستید؟ اما اینکه شما میگید فاسقون گفته اگر کسی با زبان عربی آشنا باشد و ذرعی نحف خانده باشد در حد نهومیر خانده باشد میدوند که این فاسقون نکره است یا ایوه الذین آمنو انجاکم الفاسق یا فاسقن فاسقون. اگر فاسق بود حتما مشخص و اشاره به یک فاسق خاص بود فاسقون خدا تعالیٰ گفته اگر یک فاسقی این نکره است یعنی در هر زمانی اگر یک فاسقی آمد چطور این را مصداق صحابی قرار می دهید تمام این روایت هایی که در رابطه با ولید آمده من در رابطه با این روایت ها خدمتش من کوتا عرض کنم صاحب کتاب العواسم نوشته اکثر این روایت ضعیف و منقطه اند اکثر این روایت چی هست؟ ضعیف و منقطه هستند روایت ها وقتی که ضعیف و منقطه هستند چطور از این روایت های استدلال بگیریم برای اینکه صحابه الْعَيَزُ بالله فاسق بودند سوم در یکی از همین روایت ها آمده که بنده خدمت شما مخاندم که ولید رضی اللہ تعالیم که صحابی هست داشت میرفت اونجا یکی بهش گفت که مردم میخوان تو را بزنند خب اون یکی کی هست؟ مشخص نیست معلوم نیست که مسلمان غیر مسلمانه معلوم نیست که بالاخره جنیه یا انسیه شیطانیه چی هست؟ اون که به ولید گفته خب ولید به حرف او اعتماد کرد بعید نیست که قرآن او را میگه اون فرد یک کسی بوده قرآن میگه اگر یک فاسقی چون نامعلوم بود و بیشتر فاسقون همخانی دارد و مصداق پیدا میکن نسبت به همون فرد مجهول اگر یک فاسقی آمد لذا اون یک فاسقیه معلوم نیست که یک شیطانیه یک کسی هست که چنین خبری به صحابی رسون لذا اینجا نسبت به صحابی گویا خدای تعالی تذکر میده که شما اینطور زود باور نکنید زود شما رها نکنی شما تحقیق بکنی شما بررسی بکنید و آخرین جواب و آخرین نکته خدمت شما عرض کنم ببنی از یک طرف این روایت از طرف دیگر روایت های دیگری هم هست که ما نمی اون روایت ها را اعتبار بکنیم یا این روایت را این روایت ها در کتاب های مختلف هست البته این روایت ها هم زیف هستند اونا هم زیف اینها هم زیف اون روایتی دیگه این هست که خود ولید روایت میکنه ولید روایت میکنه میگه که در فتح مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که به مکه مکرم تشریف آوردند بچه های کوچک را در محضر رسول الله می آوردند مادرهایشون می آورد که رسول الله دست به سر اونها می کشید تبرکن ولید می گوید که من بچه بودم اما مادرم سرم را خلوق زده بود خلوق نوع خوشبو و چربی هست نوع روغن معطر هست آن حضرت سر بقیه بچه ها دست کشیدن سر من دست نکشیدن به خاطر خلوق خب ولید وقتی که در زمان فتح مکه بچه بوده و این بچه چقدر سنش بوده که با مادر می آمده یا هفت سال یا هشت سال یا فوقش نو سال فتح مکه در چه سالی هست؟ در سال هشتومه این جریان مربوط به بنی مستلقه که در سال پنجم یا ششمه علا اختلاف روایتین سه سال قبل از این ولید پنج ساله بوده یا چهار ساله بوده یا شش ساله بوده ایا در این سن ولید را فرستاده ان حضرت صلی الله علیه و و وسلم و دیگه بعد در همین جریان هست که در زمان جاهلیت با اونا اختلافی داشته قبل از بیست اون زمان ولیدی نبوده لذا اگر این روایت را اعتبار بکنی معلوم میشه که اون روایت کلش مشکل دار ساختگی هست بنابر این به خاطر یک روایتی که بی‌سر و ته هست اصل و اساسی ندارد چطور ما بیاییم صحابی رسول الله را بگیم که از اینجا معلوم میشه که فاسق اس یک شان نزول درست اکثر مفسرین ذکر کردند ولی متاسفانه مفسرین یک یک عادتی دارند که از همدیگه بدون تحقیق نقل میکنند این تفسیر از اون اون تفسیر از اون اون تفسیر از اون خدا میدونه چه یکی تحقیقی کرده باشه بنا این نمیشه که از این آیه که به صورت نکره گفته فاسقون از این آیه استدلال گرفت که چی؟ که منظور از این کی هست؟ ولید هست و حال من چند تا دلیل به صورت کوتاه عرض می کنم در باره عدالت صحابه ببینید ما معتقدیم صحابه عادل هستند چون که عرض کردم امدترین دلیل این هست که دین از طریق صحابه به ما رسیده اگر صحابه مجروح باشند اگر صحابه مشکل داشته باشند قطعا دینی که ما اون دین را داریم اون دین هم چیه با اشکال مواجه میشه لذا صحابه ما معتقدم عادلند و صحابه رسول الله صلی الله علیہ وسلم و الله عزوجل معیار حق قرار دادند می ارتی حق قرار دادن؟ حق یعنی اگر شما میخواهید که دنبال حق برید و میخواهید تابع حق باشید پیرو حق باشید دنبال صحابه برید علی از بالله اگر اینها فسق بود خب آیه قرآن یا سنت به ما میگفت دنبال اینها برید معلوم شکی اینها عادلند الله تعالی میفرماید واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر عنتم در ادامه همین نمی خانم همین آیه که آیه بعد که درمیان شما رسول الله هست اگر در بسیاری از مسائل شما را پیروی بکنات شما در مشکت واقع می شید. ولكن الله حبب اليكم الايمان خوب دقت كنيد بيبي خدا براي شما صحابه چي پسنديد حبب اليكم الايمان محبوب شما ایمان هست يعني محبوب قلب شما وزينه في قلوبكم اين ایمان را در دل شما آراسته كرد و كرها اليكم الكفر والفسوق والعصيان كفر وفسق نافرماني در دل هاي شما منفوري. اولائی هم الراشدون کسانی که عربی بلدن میدونن سیغی حسره این گروه فقط اینها هستن راشدون راشدون کسانی که بر مسیر حق گامزن هستن کسانی که راه رشد و صلاح و هدایت را دارند پس خداون وقتی که انها را راشدون قرار داده وقتی که انها بر هدایت هستند چطور انها میتونند ایازو بالله فاسق باشند اینها پس عادلند این دلیل عمده‌ای هست برچی بر عدالت صحابه اولئک همر راشدون و دلیل دیگر خدای عزوجل به ایمان صحابه و عدالت صحابه توثیق فرموده اعتماد داره که به ما دستور داده مثل اونها ایمان بیاوریم فئن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا ای صحابه ای مؤمنین اگر این یهود بقیه مثل ایمان شما بیاورند فقده تدو هدایت میشن پس معلوم میشه که ایمان صحابه معیار است خود صحابه معیار حقا اگر اینها فاسق بودند اونها را خدا الگو قرار میداد یکی از اونها فاسق بود خدا اونها رو الگوی قرار میداد آیات دیگه هم هستند و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا ونؤمن كما امن السفهاء كما امن الناس خدا فرموده مثل ایمان صحابه حدیثی هست رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمودن که بنی اسرائیل منشعب شدن و دست دسته شدن به 72 گروه و فرمود که امت من به هفتاد و سی گروه تقسیم می شوند. بغیر از یک گروه بقیه در حالاتند. صحابی ذکر کرد قال من هی یا رسول الله اون یک گروهی که ناجی است اون یک گروهی که بر هدایت است اون گروه کدومه فرمود ما انا علیه و اصحابی اون گروهی که من و اصحابم برون باشیم اون طریقی که من و اصحابم بر اون طریق باشید وقتی که رسول الله خودش را و اصحابش را بر اون میدانت قطعا صحابه عادل بودند که همون طور که رسول الله معیار حق است رسول الله الگوه است رسول الله مقتداه است صحابه را هم بعد از رسول الله چی قرار میده؟ الگوه معیار حق و آخرین حدیثی که برای شما بخانم رسول الله فرمود انه يعيش منكم بعدي، فسيره اختلاف كثيره بعضي از شما که بعد از من زندگي ميكنند اختلافات زيادي ميبيند و ميبيند، فعليكم بصنّتي و صنّة الخلفاء الراشدين المهديين، بر شما هست كه سنت من و سنت خلفاء راشدين كمهديين هستند، هدایت یافته هستند، به اونها سخت به چسبید، عليها بالنواجز با این دندان‌های نیش به اصطلاح و با این دندان‌های نواجز که سخت می گیرند شما سخت بچسبیدون ها کنایه سخت گرفتن و محکم گرفتن بس اینجا هم خلفای راشدین و را رسول الله معیار قرار داد که سنت آنها مصر سنت رسول الله هستند بس ببینید تمام قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید دارد می فرماید ما را بقیه امت را که دنبال روی اونها باشیم العیاذ بالله اگر اونها دوچار فسق بشن دوچار زلالت و گمراهی بشن چطور ما دستور پیدا میکنیم که ما تابع اونها باشیم لذا این دلیل هست بر که صحابه عادل هستن صحابه معیار حق هستن معیاری برای هدایت و ایمان هستند. یعنی هدایت و ایمان ما مثل اونها باشد اون وقت درسته و صحیح هست اینهایی که معیار حق باشن اینها نمیتونن گمراه باشن اینها نمیتونن فاسق باشن چرا؟ گناه چیزی دیگه هست گناه سر میزند یک زمانی اما بعد از اینکه خدای تعالی بخشید و اونها را حفاظت فرمود بعد از اون محفوظ هستند بعد از اون دیگه گناه هم نمی به این معنی صحابه محفوظ هستند چون که خدا اونها را معیار قرار داده رسول الله اونها را معیار قرار داده اونها محفوظ هستند این هم بالاخره دلیل ای هست بر عدالت صحابه و کسی نمیتواند با یک روایت ضعیفی یا روایت تاریخی یا یک بگو مگوی که انها را مغرزین درست کردن روی صحابه ارز کنن که بتازد و روی صحابه ایراد بگیرد خورده بگیرد همونطور که ارز کردم صحابه همه عادل هستند و الله عزوجل اونها را راشدون فرموده که این آیره انشاءالله در درس. فردى اگر حیات باقی بشر ان ترجمه می شود وعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فظلم من الله ونعمه والله عليم حكيم دار آیاتی گذشته و درست گذشته خاندیم که در این سوره مبارکه قوانینی هست زوابطی هست اصولی هست که اگر این اصول را ما رعایت بکنیم و این اصول را در زندگی خودمون داشته باشیم اون وقت نظم حاکم میشه در جامعه و جامعه به طرف خیر و صلاح پیش میرود بعضی از این اصول در ارتباط با شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم و ذات ایشون بود اولین قانون و اولین ذابطه زابط را خواندیم که در محضر رسول الله پیش قدمی نشه یعنی مخالفت با ایشون نشه دومی این بود که در محضر رسول الله صداها بلند نشه چه وقتی که با پیغمبر سخن میگوید و ایشون هم با شما سخن میگوید و یا چه زمانی که شما سخن میگوید و ایشون گوش میکنند و سوامین قانون این بود که اگر فاسقی خبری آورد هر خبری بود اقدام نکنید اول بررسی بکنید بعد از بررسی کردن شما اقدام به عمل بکنید و در ادامه فرمود ان انفیکم رسول الله بعضی که میگویند جریان آیه گذشته مربوط به زمان رسول الله و ولید هست و اونجا وقتی که ولید گزارش داد که بنی مستلق میخواستن مرا از بین ببرند حمله بکنند آن حضرت صلی الله علیه وسلم با صحابه مشوره کردند خیلی ها اصرار داشتند که حمله بکنیم اما آن حضرت فرمودن اول بررسی میکنیم لذا این آیه مربوط به همان است که وعلموا ان فيكم رسول الله شما بدانید که در میان شما رسول خداست، پیامبر خداست، لو يطيعكم في كثير من الأمر العنتم اگر در بسیاری از مسائل پیغمبرش اطاعت شما را بکند از شما حرف گوش کند خب شما احساساتی هستید شما گاهی مشوره تند و تیز میدید اون وقت لعنتتم شما همه در مشقت واقع میشید در رنج و تکلیف واقع میشوید لذا پیغمبر باید بررسی کند خودش مشوره شما رو گوش کند اما خود آن حضرت تصمیم بگیرد شما اصرار نکنید بر رأی خودتان و بعد ان شما گاهی مشوره آنچنانی میدهید خداوند میفرماید این نشعت گرفته از ایمان است شما هم حب ایمان در دل شما موج می زند شما هم گناهی ندارید ولیکن الله حبب الیکم ایمان اما خداوند عزوجل تکوینا ایمان را به سوی شما محبوب قرار داد چون در دل شما ایمان موج می زند و عشق به الله موج می زند و زینه فی قلوبکم و خداوند اون ایمان را در دل شما آراسته کرد اینجا خداوند چهار جائزه و چهار پاداش برای صحابه بیان می فرماید. اولین پاداش اینه که ایمان را در دل شما محبوب قرار داد و ایمان را در دل شما آراسته کرد البته قبل از این که در رابطه با این چهار پاداش عرض بکنم تفسیر دوم را میگم بعضی من جمله شیخ بزرگوار شیخ حسین علی معتقدت که این آیم مربوط به قانون اول است اولین قانون چی بود؟ یا ایوها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله ای مؤمنین در محضر خدا و رسولش پیش قدمی نکنید یعنی مخالفت نکنید و گوش به فرمان باشید چون که اگر پیغمبر از شما اطاعت کند لو یطیع کن فی کثیر من الامر شما به زحمت و به مشقت میفتید شما باید از پیغمبر فرمان ببرید و گوش فرمان ایشون باشید و بعد فرمود که خداوند چند پاداش و چند انعام به شما داده اینجا فضیلت اصحاب یکی از آیاتی که ما از این آیه بر عدالت صحابه استدلال می گیریم دیروز هم این آیه را خدمت شما قراءت کردم همین آیه هست ببینید خداوند یاران رسول الله را و شاگردان رسول الله را با چه کلماتی توصیف فرموده هر یک از این کلمات قابل تدبراند قابل تعمقند خود صحابه چون که فضیلت صحابیت را داشتند همین که با ایمان رسول الله صلی الله علیه و وسلم را مشاهده کردند، تماشا کردند، در خدمت آن حضرت بودند همین خودش بزرگترین فضیلتی هست که عبادت تمام آبدان دنیا را جمع بکنیم با همین فضل فضیلت برابری نمی کند علاوه از اینکه صحابه آبد بودند، زاهد بودند، دعوتگر بودند، مجاهد بودند جان و مال و خون برای اسلام دادند اما همین که در محضر رسول الله بودند این برکت را حاصل کردند چه فضلی از این بالاتر می تواند باشد روایتی هست در سنن ابو داود و سنن ترمیزی که این روایت تا حد جایگاه صحابه را نشان میده، که در این روایت هست که فرمودند والله لمشهد رجل منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم یکی از تابعین این را فرمود که سوگند به خدا حضور یک صحابی با رسول الله در میادین مختلف در معرکه های مختلف در میادین جنگ که در کنار رسول الله بوده که یغبر فيه وجهه که در اون معرکه و در اون میدان چهره صحابی غبارالود بشه یعنی همین اندازه فقط در کنار رسول الله باشد یک روز و نیم روز و چهرهش غبارالود بشه خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح اون یک لحظه بهتر است از عمر شما که در تمام عمر شما عمل بکنید عبادت کنید نماز و سجده بکنید و یک لحظه صحابی رسول الله صلی الله علیه و وسلم از عمر شما بهتر است ولو عمر عمر عمر نو اگر یکی از شما به اندازه عمر نوح داشته باشید یعنی هزار سال عمر بکنید و در این هزار سال همیش اطاعت و بندگی و عمل بکنید یک روز که صحابی در کنار رسول الله بوده و چهرهش غبار آلود شده اون یک روز فضیلتش از تمام عمر شما بالا شما صحابه را چی پنداش دید صحابه را چی تصور کردید اینها یاران رسول الله صلی علیه و سلم استند کسانی که برای فداکاری از هیچ چیزی دریغ نکردند نجانشون نمالشون نترک زن و فرزندشون اینها جانانه در کنار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استادند چنان استادند که یک جانا چندین جا خدای اززا و از اینها اعلام رضایت کرده این جماعت را کسی بر اینها ایراد می گیرد اگر این صحابی یک جای بنفرض اشتباه کرده باشد که ما دیروز هم خدمت شما عرض کردیم ما معتقدیم صحابه معصوم نیستند انبیاء معصومند انبیاء از گناه پاک هستند صحابه جائز الخطا هستند اشتباه از اینها سر میزند اما قرآن می فرماید الحسنات الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ وقتی که شما یک اشتباهی میکنید، کنید وضو می گیرید وضو شما را معاف می کند به مسجد میرید، مسجد رفتن های شما را معاف می کند هر اشتباهی انسان انجام میده عملی می کند خطاش معاف میشه صحابی که در کنار رسول الله جنگیده با دشمنان جنگیده او اگر یک اشتباهی کوچکی کرده این را گنده کردن و این را برجسته کردن و این را نمایان کردن و بر این از این بر فسق و بر بی‌عدالتی صحابه استدلال گرفتن واقعاً این کمال بی‌انصافی است این صحابی که اینقدر محبوب خداست که ببینید این کلمات را شما تدبر بکنید اگر کسی روایتی را باور ندارد قرآن را که قبول داره اگر قرآن را قبول نداریم خب بیشتر از اون بحثی نیست اگر کسی قرآن را قبول ندارد دیگه ما باحش صحبتی نداریم اما اگر قرآن را قبول داریم قرآن چی میفرماید الله میفرماید ببین چهار تا پاداش یک ولیکن الله حبب الیکم ایمان ای جماعت در خدمت رسول الله ای کسانی که همواره با پیامبر خدا هم نشین هستید و به پیغمبر مشوره میدهید، بر مشورتون اصراد نکنید گرچه خداون محبوب قرار داده محبوب شما ایمان را و زینه فی قلوب و ایمان را در قلبهای شما آراسته قرار داده آراسته و زینه قلب شما و قلب شما ایمان شما است. این گواهی اللہ است. و کرره ایلیکم الكفر والفسوق والعسیان دو پاداش خدای تعالی در دل شما کفر مکروح و ناپسند و شنیع قرار داده. یعنی بزرگترین عیب و بزرگترین بدی از دیدگاه شما و از گفته دل شما چی هست کفر هست شما از کفر بیزارید شما از کفر گریزانید این دوومین پاداش و سوومین و الفسوق و خداوند عز و جل گناه را فسوق مفسرین گفتن گناه کبیره را میگویند عصيان گناه صغیره را میگویند در دل شما نسبت به گناهان کبیره و صغیره خداوند تنفر ایجاد کرده اکراه ایجاد کرده خداوند از دل اونها تعریف میکند خداوندی که مثل من و شما ظاهر را نمیبیند خداوندی که علیم بذات صدور اسرار دل را هم می بیند و میداند اون خداوند میگوید در این دل محبوب این دل ایمان هست دلهای صحابه و زینت بخش این دلها ایمان هست و منفور این دلها کفر است سفون منفور این دلها گناه صغیره و کبیره هست این انسان هایی که این گونه این گونه از بخدمت شما این صفات را داشته باشند و صفاتی که نه انسانی تعریف می کند این صفات را رب العالمین این صفات را نام میبرد این انسان ها میتونند که غیر عادل باشند خداوند عزوجل اینها را برگزید اینها را گلچین کرد و کرها الیکم الكفر والفسوق والعصيان خداوند کفر را فسق را گناه کبیر را عصیان گناه صغیره را در دل شما منفور قرار داد شما نسبت به این گناهان نفرت دارید این ستا پاداش و چهارمین اولائک هم الراشدون الله می فرمد این جماعت گویا قبلا خطاب به صحابه بود به صحابه می گفت خدا محبوب شما ایمان قرار داد زینت بخش دل شما ایمان قرار داد منفور دل شما کفر هست منفور دل شما عسیان و فسق هست حال خداوند من به ما میگه: گه اولائک هم الراشدون این جماعت جماعت الراشدون است راشد یعنی راه رشد و هدایت را یافته راه خیر و صلاح را یافته راهی که خدا بر اون راه راضی هست، راه هدایت هست، راه پیشرفت و ترقی هست، دنیا و آخرت را درست می کند، اون راه را این جماعت راه یافته هست به اون راه، پس وقتی که اینها را خدا راشدون میگوید ما از همین اولائی که همون راشدون استدلال می گیریم،, گیریم اینها گیم آدلاً که رب در باره انها می هم الراشدون. اما این مقام را، این جایگاه را، این صفات را، این ویشگی ها را خداوند از و جل چرا به صحاب داد؟ خداوند می فرماید فضلا من الله و نعمه این فضلی هست از جانب الله خداوند انها را فضیلت بخشید و النعمتی از الله هست. خداوند به اینها نعمت و کرامت داد، فضل و برتری داد. لذا نباید دیگران حسود باشند. خدا انها را برگزید. خدا انها را انتخاب کرد و به این فضل مشرفشون فرمود. والله علیم حکیم. اگر به همین والله علیم حکیم فکر بکنیم و بیندیشیم هم فهمیم یعنی چه؟ خداوند علیم هست. میداند که کدوم قلب را ظرف قرار بدهد در همون مکه اموی رسول الله که از نظر چهره زیباترین فرد است از نظر حسب و نسب بالاترین شخص است ابو او در همون مکه هست ارز کنم که ابو جهل در مکه هست سرداری هست ولید ابن مغیره که نظریه پرداز اهل مکه هست به اصطلاح امروزی ها از کنم که کسی که رهبر فکریشون هست و کسی که همه مکه و اهل مکه خیره شدن به دهان ولید که ولید چی میگه؟ ولید تو مکه هست کسی که نه شرق گذاشته نه غرب نه ایران گذاشته نه همه جاها را سفر کرده و با همه فرهنگ ها آشنا و ادعا میکنن ما همه چیز را میدانم این ولید که دانشمند ترین و آقل ترین فردشون هست اونجا هست قطبه شیبه هست امیه هست اینا تمام هم سردار هم سرمایدار ام اینها ایمان نصیب نمیشه خداوند علیم هست میدوند خدا به ظاهر نگاه نمی به قلب نگاه میکنه این ایمان نصیب ابوبکر میشه علی میشه عمر میشه, عمر میشه عثمان میشه طلحه و زبیر میشه سعد و سعید میشه خالد و بو عبیده میشه عبدالرحمن بن عوف میشه اینها رو خدا انتخاب میکنه صحابه را خدا انتخاب میکنه بلال را از حبشه صہیب را از روم سلمان را از فارس اینها را خدا جون والله علیمون خدا میدوند که محل و ظرف خوبی برای ایمان کجا است حکیم در کارهای خدا حکمت است کارهای خدا خود رسول الله صلی الله علیه و اسلام تلاش میکند چندین بار جلسه میگیرد با قریش با سرداران که اینها ایمان بیاورند اما الله بهتر میداند خداوند میفرما لعلك و النفسک الا یکون مؤمنین تو میخوای خودت را بکشتن و هلاکت بدین چون اینها ایمان نمیآورند خیلی رسول الله حریص بود ولی محل ایمان را خدا میداند ظرف ایمان را خدا میداند لذا خداوند این جماعت پاکان را این جماعت صحابه را برای ایمان انتخاب فرمود والله علیم حکیم وَإِنْ تَائِفَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا قانون چارم رمی خانیم قانون چارم در باره اختلاف ما بین مسلمانان است اگر دو گروه از مؤمنین باهم درگیر شدند جنگیدند وزیفه شما بقیه چیه؟ فَأَصْلِحُوا بینهما بین آنها اصلاح ایجاد بکن ببینید اگر دو گروه با هم دیگه می جنگد یکی حق یکی برحق است یکی برحق نیست بنا حق است قطعا یکی ظالم است یکی مظلوم است یکی گناهکار است وجودی که ظالم گناہکار در ادامه میفرم باقی است بعض هم قرآن او را مومن می که کسی اگر اشتباهی بکند، اون طولی که معتذره و خوارج میگن از دایره ایمان خارج نمیشه این آیره استدلال گرفتن علماء ما و مفسران ما بر علیه این گروه هایی که تکفیر می کنند مثل معتذره خوارج تکفیر می کسانی را که گناه مرتکب بشوند الله می فرماید و این طائفتان من المؤمنین اگر دوگرو از مؤمنین اقتتلو با همدیگه بجنگند، بجنگند فا بین بینهما شما بقیه مؤمنین نظارگر نباشید تماشاچی نباشید فا بین بینهما صلح ایجاد کنید بین آنها فا این بغت احداهما اگر تعدی کرد بغاوت کرد یکی از آن دو علال اخرى بر دیگری یکی زیاده روی میکنه، کنه یکی سلح هم نمی کنه به دستور خدا هم قانه نمیشه. پس شما همه با هم عليه او بجنگید فقاتل اللتی تبغی حتی تفیع ایلا امر الله شما بجنگید با اون یکی که تبغی بغاوت می کند زیاده روی می کند سرکشی می کند حتی تفیع ایلا امر الله حتی که رجوع کنه به امر خدا حتی که او بی آیت به امر خدا چی بشه؟ پایبند بشه و هر چی که دستور شریعت هست اختلاف چه زمینه چه سرمالی هست چه ارز کنم قتل انسانی هست بالاخره بیایند و با هم دیگه شریعت کنن امر خدا را و حکم خدا را اجرا بکنن فا انفاعت اگر اون یکی رجوع کرد گفت باشه تن میدم به شریعت خان میدم بسول ولی بین ما عدالت بکنید فاصلحو بینهما بالعدل واقسطوا شما صلح ایجاد کنید شما مسلمانان بین آنها و اصلحوا واقسطوا اما در ایجاد صلح انصاف کنید بی انصافی نکنید هر گروه که قوی بود از او حمایت نکنید بلکه خدا را در نظر بگیرید عدالت را در نظر بگیرید و اگر شما عدالت را و قسط را در نظر بگیرید خدا هم شما را دوست دارد ان الله يحب المقسطین بدون شک خداوند دوست دارد انصاف کنندگان را در ارتباط با این حکم خدمت شما عرض بکنم که بسیاری از علما و فقهای ما میگویند که این وظیفه که اینجا بیان شده این وظیفه حاکم است وظیفه حکومت است که اگر دو گروه از مسلمانان با هم درگیر شدند حاکم باید اینها را جمع کند که اینها را صلح بده بگه بشینید با هم دیگه اختلافتون را حل کنید اختلافتون را پیش علما حل کنید اختلافتون را پیش در دادگاه در محاکم قضایی حل کنید جریان چیه نباید با هم درگیر بشی نگذارند درگیر میشد. اما اگر یکی از اینها تند رفت و گفت نه من سل نمی کنم من میکشم میزنم فلان میکنم پس باید با اون مظلوم همراهی بکند حاکم و بر علیه او بجنگد بقیه مسلمانان که نمیتونن بجنگند همون جنگ دو تا طایفه بس دیگه سومی خودش را درگیر نکنند لذا علما میفرما به این دلیل این وظیفه وظیفه حاکم است اگر حاکم سیاستش پالیسیش صلح باشد ملت را با هم دیگه آشتی بده که 100 درصد موفق میشه خدا هم کمکش میکنه اما اگر خدا نکرده پالیسی سیاست به هم انداختن باشد اختلاف انداختن باشد و خدا رحم کنه بر اون ملتی که چنین حاکمانی داشته باشند متاسفانه خیلی از حکومت ها همین سیاست را دارند دوست دارند که ملت ها با هم درگیر بشند اقوام با هم درگیر بشند این زبان با اون زبان درگیر بشند تا اون که در وسط اون حکومت چرا بکند لذا اگر حکومت در این مورد کوتاهی بکند مسئول است گناهکار هست نباید بگذارد مسلمانان بجانه هم بیفتند نباید بگذارد که مسلمانان درگیر بشند کشته بشند خونها زایه بشه بچه یتیم بشه زنها بیوه بشه اگر دستش میرسد و نکند در این باب مسئول است گناهکار است و بعضی از علما گفتند که اگر شرایط طوری هست که جای مثلا منطقه آزادی هست اصلا حکومتی نیست یا حکومت اونجا تسلطی ندارد قدرتی ندارد اونجا اونجا مسلمانان بقیه توائف بقیه قبایل جمع بشند و جای جایگزین یک حکومت شورای تشکیل بدهند و اینها همون نقش رییفه بکنند که حاکم باید بگه لذا همه این شورا و طرف درگیر را مجبور بکنم باید بشینن صلح بکنن نگذارند که با هم دیگه درگیر بشند و یک صورت دیگری گفتن که نیازی شاید به این همه صورت ها نیست اینها مسائل فقهی هستند اگر یک وقت اختلاف بین حکومت و بین گروهی از مردم باشد مثلا فلان روستا فلان شهر با حکومت اختلاف داره روی اراضی اختلاف داره حکومت میگه این اراضی مال منه اونها میگه این زمین ها مال ما هست چه سال ما اینجا کشاورزی کردیم اختلاف و اختلاف که بشه صد در مردم شلوغ میکنند نمیگوزن حقشون پایمال بشه حکومت هم قدرت داره وظیفه بقیه مسلمانان است شهر دیگه قبایل دیگه روستای دیگه اونها مداخله بکنن بیان با مسئولین صحبت کنند. با مردم صحبت کنند. نگذارند که اینها با هم درگیر بشند نگذارند جا مردم تلف بشند بشینند بین حکومت و بین مردم هرچی که حق هست فیصله بکنند و اگر اونجا یک گروهی گفت نه من قبول نمی کنم حکم خدا را من نمیپذیرم، من قدرت دارم زور دارم چه اون قبیله بود چه حکومت بود اون وقت مسلمانان وظیفه دارن با همون مظلومین همراه بشند. این دستوره. با اون کسی که مظلوم هست باید مسلمانان همراه بشند و نگذارن که بر مظلوم تعدی بشه. وقتی که همه مسلمانان هم رابشند، حکومت چه کار میتونه بکنه؟ نگزارند، هیچ کسی ظلم بکنه، نه حاکم ظلم بکنه، نه رعیت ظلم بکنه، وقتی که مسلمانان چنین وحدتی داشته باشند، چنین همبستگی داشته باشند، آیا حقی تلف میشه؟ آیا حقی ضائع میشه؟ هرگز، لذا الله میفرماید، فَإِنفَاعت فا اگر رجوع کرد گروهی از آنان، فاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا بین آنان صلح ایجاد کنید و انصاف کنید صلح عدل و انصاف را پیشه بگیرید اگر شما انصاف را پیشه بگیرید ان الله يحب المقسطين ای سمری صلح و خداوند دوست دارد انصاف کنندگانی همچون شما را مینون اخ این دلیل اصلاح هست چرا باید دو گری با هم می جنگید ما باید بینشون س ایجاد کنیم چونی نه با هم براادند نباید برادر دشمن برادر باشد هر قومی باشد هر زبانی باشد هر گویشی داشته باشد نباید بین برادران چی باشد؟ اختلاف لذا الله می فرمایید این عمل جز این نیست که مؤمنان برادر هستند فاصلحو بین اخویكم شما صلح ایجاد کنید بین برادرانتان تاکه قوت و خوت باقی بماند برادری بماند صلح بماند آشتی بماند و قرر نباشند واتقو اللہ لعلکم ترحمون این نتیج این نسخی عمل است اگر شما تقوی داشته باشید، شما حتما عامل میشید، شما پایبند میشید، لذا خدا از خداون پروا داشته باشید، از خداون بترسید، لعلکم ترحمون سمره تقوی هست، اینجا لعله به معنای ترجی و شاید نیست، حتما شما مورد رحم خدا قرار میگیرید. یعنی اگر شما با تقوی باشید، خدا ترس باشید، قطعا مورد رحم پروردگار قرار میگیری خدا به شما رحم میکند، یا ایها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ببینید ما در قانون پنجم خواندیم که بین برادران چیکار بکنیم صلح ایجاد کنیم و اگر دو گروهی با هم دیگه درگیر شدند نگذاریم درگیر بشند اما علت درگیری چی هست خداوند در قانون پنجم و شیشم مواد مواردی را ذکر می فرماید که این موارد باعث درگیری می شه این مسائل باعث درگیری و نزاع می شه لذا اصلا در درگیری را ببندید راه نزاع را مسدود بکنید نگذارید اصلا اختلاف پیش میاد اختلاف با چی پیش میاد با این مسائل در قانون اول هست لا يسخر قوم من قوم هیچ قومی قوم دیگر را مسخره نکند هیچ گروهی گروهی دیگر را مسخره نکند یکی از علل درگیری ها مسخره کردن هست مسلمان باید اخلاق داشته باشه اینا اخلاق هستن واقعا که قرآن اگر بگیم کتاب عقیده هست کتاب عقیده و ایمان است. اگر بگیم کتاب عمل هست پر از دستوراتی که عمل بکنیم. اگر بگیم کتاب اخلاق هست تمام دستوراتش اخلاقی هستند. یعنی یک انسان میخواهد انسانی کامل بشه به وسیله قرآن انسان کامل میشه. درستا اینها موارد اخلاقی هستند که جلوی درگیری را میگیرند. بیشتر دو نفر با هم درگیر میشن، میزنند تو سر و کله هم دیگر چون هم دیگر را مسخره میکنند. بنابراین این پروردگار میفرماید یا ایها الذين آمنو بله در قانون پنجم عرض کردم سه چیز را خداوند فرموده یک همدیگر را مسخره نکنید دو به هم دیگر بیان نکنید سه به همدیگر لقب های بد و از کنم نام های بدی برای همدیگر نذارید که توضیح می دیم هر یک را فسر قانون پنجم اولین یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم اي مؤمنان مسخره نکند قومی قوم دیگر را این قوم قوم دیگر را مسخره میکند این باعث جنجال میشه باعث درگیری میشه متاسفانه می بینیم بعضی از جوانهای سبکسر جوانهایی که عقل خرده انچرانینی ندارن تو این فضاهای مجازی همدیگر را مسخره میکنه این قوم اون قوم را مسخره میکند اون قوم دیگری را مسخره میکنه همین ها باعث میشه که وقتی در فضای حقیقی همدیگر را میبینند میزنن به هم دیگه چرا مسخره میشه مگر دلیل برتری قوم هست هر کسی اینطور فکر میکنه اون خیلی کتا فکر است دلیل برتری را هم در ادامه خدا میفرماید که دلیل برتری هر انسان خدا ترسی هست تقوا هست نه لذا الله می فرماید يسخر قوم من قوم مسخره نكند. هیچ قومی قوم دیگر را عصا ان یکنوا خیر منهم شاید ممکن هست که انیکولوا باشند عند الله بنوسید کی باشند مسخره شونده خیرم من هم بهتر از مسخره کننده اون گروهی که مسخره شده تمسخر شده شاید پیش خدا اونها از مسخره کنندگان چی باشند؟ بهتر باشند چون برتری با پول نیست با مال نیست با قوم نیست با حسب و نسب نیست اندالله کسی برتر باشد اون برتره ولا نساء من نِسَاءٍ و همچنین مسخره نکنن زنها زنها را ببینی وقتی کلمه قوم فرمود قوم یک لفظی هست که شامل مرد و زن میشه نیازی نبود دوباره ذکر بفرمای زنها را در تمام قرآن خدا تعالی ذکر میکنن مردها را نیازی به ذکر زنها مجدد نیست اینجا چرا زنها مجددن ذکر شدند علما میفرمند چون که این مریضی متاسفانه در میان بانوان و زنها بیشتر هست در میان خواهران بیشتر هست لذا به صورت خاص خداوند اونها را اشاره فرمود بیشتر زنها, زنها را تمسخر می کنند، چون ملاک برای زنها یه سری چیزهایی هست که اونها در واقع ملاک نیستند مثلا زیبایی ملاک هست زیورالت ملک هست لباس خوب ملاک هست اینها اگر کسی نداشته باشه اگر کسی لباس معمولی داشته باشه اون بیارزش نیست اگر کسی زیبایی داشته نباشه اون بیارزش نیست بیارزش اونه که گرفتار آسام و معاصی و گناهان هست بیارزش اونه که شب و روز در غفلت و در خدا فراموشی هست و ارزشمند و هست که خدا ترس است و با تقوا است ولو اینکه هیچ شکلی هم نداره پس بیشتر زنها را خطاب کردند که این قوم بیشتر این مریضی را داره این ایراد را داره که همدیگر را مسخره می‌کنند لذا الله می‌فرماید ولا نساء من نساء و نزنها مسخر کنند زنها را عصا این یکن خیرم من ممکن هست شاید یا امید هست این یکن اینکه باشند اون زنهاي مسخره شوندی خیرم من هنها بهتر از زنهاي مسخر کنندی اندالله شاید اونی که مسخر شده از مسخر کنندی بهتر باشد پس تمسخر یکی از دلایل جنگ هست دلایل درگیری هست از علل اختلاف هست پس از این باید همه بپرهیزند همه مسلمانان دوری کنند و دومین نکته که در این قانون ششم زکر، پنجم پنجمزک شده و لا تلمزو انفسکم همدیگر را طعنه نزنید همدیگر را تعنه نزنید ارز به خدمت شما چرا فرمود ولا تلمیز و انفسکم نفس به خود انسان میگه خودت را تعنه نزن بعضی گفتن چون که شما وقتی که برادرت را تعنه زدی برادر مسلمانت را در واقع به خود تعنه زدی اونم برادرت هست اگر ایرادی عیبی در اون حس این اراده و تو برمی چون برادر تو هست مسلمانه و بعضی میگن نه انفسکم مثل لا تقتلو انفسکم هست که هیچ کس, کس خودش را نمیکشد ولی دیگری را میکشد کشد اونم این کشد وارثش این میکشد پس در واقع خودت را کشتی اینجا هم وقتی که کسی را طعنه می زنی اون وقت او هم تو را طعنه میزند او هم دیگه ساکت نمی پس بس چه کسی تو را خودت چون علت خودت هستی سبب خودت هستی لذا ولا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ معنای این تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ این هست که لا یعب بعضکم بعضا بعضی بر بعضی دیگه عیب وارد نکند بعضی بر بعضی دیگه عیب وارد نکند ببینید این عیب بر دونو هست یک عیبی هست که خدا در او پیدا کرده مثلا یک چشمش کوره یک پایش لنگه سرش کچله از این نوع عیوب او را وقتی که میگی بالاخره اون هم حتما یک چیزی بهت میگه یا یعنی اینکه در واقع خودت را گفتی چرا؟ او اشارتون الان المؤمنین که واحده مؤمن مثل نفس واحده هست فمتا عاب المومن, المومن هر وقتی مؤمنی مؤمنی را عیب بزند فکر انه عاب نفسه این شخص خودش را عیب زده یکی این هست که به چیزی او را عیب می که یک عرض کنم خداوند در وجودش پیدا کرده دوم این که نه عیبی هست که خودش گرفتار اون عیب است. و بالخصوص از اون عیب توبه کرده مثلا کسی نموسلمان است تا دیروز یهودی بود الان بر او عصبانی هست میگه یهودی یا مثلا کسی تا دیروز دزدی میکرد کار بی می میکرد امروز همون لقب را کسی ذکر میکنه الان توبه کرده میگه که دوست شرابی زانی از این ایوبی که اون فرد داشته و الان نداره در حدیث وعید شدید آمده که کسی برادرش را به عیبی به عیبی طعنه بزند که اون عیب در وجود او بوده خدای از وجل این تعنی زننده را نمی تا زمانی که خودش را به همون عیب گرفتار نکرد خیلی وعید سختی هست تو راحت نیست که انسان به هر کسی هر چی که دلش میخواهد از زبانش صادر بکند بگوید بلکه باید مسلمان هوای مسلمان را داشته باشد ولا تلمزوا انفسکم هم دیگر را طعنه نزنید هم دیگر را بر هم دیگر ای وارد نکنید ولا تنابزوا بالالقاب و بر هم دیگر نیندازید لقبهای نامناسب لقبهای نامناسب لقبی که بلکه یک کسی به یک لقبی به یک اسمی اسم غیر مناسبی هست لذا بعضی برای بعضی می گزارند لقب می گزارند و با این اسمها و لقبها که این اسمها و لقبها بعضی در ذهن است اما ذکرشون را مناسب نمی دونم اینها مناسب نیستند که انسان برای کسی رب ملقب لقبی بکند الله میفرمايت بس الاسم الفسوق بعد الامام بد هست اون اسمی که موجب فسق قائل میشه یعنی بعضی نام ها هستند شما به فرد اون نام را برایش میذاری خودت لقبی برایش درست میکنی خودت برایش نامی میگذاری که مردم را بخندانی این برای قائل برای گوینده موجب فسق میشه و میفرماد بدترین چیز اون نامی هست که موجب فسق میشه بعد از ایمان بعد از این که ایمان آوردی چرا فسق چرا نافرمانی خدا لذا الله عزوجل این موارد اخلاقی را بیان فرمود و بعد از این خداوند وعید بیان می فرماید و من لم يتوب فالائک هم الظالمون هر کسی توبه نکند بر نگردد به سوی خدا این جماعت جماعت ظالمان هست. اینها ظالم هستند که توبه نمی و ادامه می دهند این واقعا این کار بنابر تصریح قرآن فسق است یکی از موارد فسق یعنی گناه کبیره همینه که انسان از به خدمت شما کسی را نامی براش بذارد که نام تو اون ناب عیبی هست و اون را نام را وقتی که براش میگی جلوی مردم همه قهقه همی زنی میخندند اون بیشار سرش پایین میشه این جز گناهان کبیره هست و اگر کسی ادامه بده این ظالم هسته که توبه نکنه و از اشتباهش بر نگرده یا ایوها الذین آمنو جتنبو کثیر من الظن در قانون ششم که اینها هم بعضی وقتها موجب چی میشه؟ موجب درگیری میشه خداوند اززوجل از سه چیز من کرده یک سوء زن دو تجسس یعنی از عیوب مردم خود را آگاه کردن و آشنا کردن سه غیبت مردم کردن این سه چیز موجب هم فسق هست و هم گناه کبیره هست اولی را عرض بکنم خداوند می فرماید یا ایوها الذین آم و جتنبو کثیر من الظن ای مؤمنان اجتناب کنید از بسیاری از گمانها زن و گمان چونکه این بعض زن اسمون همان بعضی از گمان ها گمان ها چی هست؟ گناه, هست گناه هست گناه کبیره هست اسمون تنوین برای تعظیم است گناه بزرگ گناه کبیره یعنی بدگمان نباشید ببینید چند نوع گمان داریم یک گمانی هست که تعلق بدگمانی فقط به خود گمان کننده است مثلا من گمانی میکنم نسبت به فردی نجای اظهار میکنم نه هیچ این گمان من به خودم مربوطه نسبت به اون فرد احساس خطر میکنم احتیاط میکنم این گمان اشکالی ندارد در یک روایتی آمده اِنَّ الحزم سو الْحَزْمِ سُوْزَنْ یکی از موارد احتیاط سویزن هست یعنی میخوای احتیاط بکنی نسبت به کسی که نمی شناسی بدگمان باش نسبت به هر کسی چکار بکن بدگمان باش یعنی احتیاط کن شیخ سعدی رحمت الله عليه همین را به این شیر در آورده نگه داردن شوخ در کیسه دور که بیند همه خلق را کیسه بر یعنی کسی میتوند کیسه در خودش را کیسه طلا و نغره خودش را و جواهرات خودش را محفوظ نگه دارد که هر کسی نزدیکش میاد فکر بکنه این کیسه بر هست یعنی میترس خب به کسی اعلام نمیکنه این کیسه بر هست تو دلش احتیاط میکنه. پس این بدگمانی یه چیزی هست که مربوط به خود انسان است. این بدگمانی اشکال ندارد این از موارد چی هست احتیاط هست و این تعلقی با تحقیق و بررسی هم ندارد من برم تحقیق بکنم واقعا این شخص دوز هست این شخص فلان نخیر، این نیاز به تحقیق ندارد نوع دوم، اگر انسان همراه با بدگمانی بلاخره همرا با بدگمانی تعلق تحقیقی هم داری یعنی اون نیاز به تحقیق است باید بررسی بشه خب این دو صورت دارد اون کسی که به اون بدگمان هستی واقعا محل بدگمانی هست یا نیست اگر محل بدگمانی نیست اون کس اون ذات چنان ذاتی هست که نباید نسبت به او بدگمان بود اگر انسان همینطور بی خود بدگمان هست این گناه کبیره هست این گناه گناه کبیره هست مثل کسی که بدگمان هست نسبت به الله عزوجل نسبت به خدای عزوجل باید انسان بررسی کند در قرآن مجید خدا چی صفاتی دارد؟ انسان بدگمان باشد که خدا نسبت به من لطف نمی کند مرا نمی بخشاید، مشکل من حل نمی کند، این گمان بد داشتن، این گناه کبیره هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند، لا يموتن احدكم، یکی از شما نمیرد، از این دنیا نرود، الا وهو يحسن الظن بالله، مگر نسبت به الله حسن زن داشته باشد، یعنی از این دنیا طوری برو که با خود نسبت به ربت حسنی زن داشته باشی نسبت به خدا بدگمان نباش پس اونجایی که میخوای بدگمانی بکنی آیا محل بدگمانی هست اگر محل بدگمانی نیست مثل الله که رحمان رحیم رؤوف کریم پس این بدگمانی کردن گناه کبیره هست یا مثلا کسانی که بدگمان شدند منافقین نسبت به صدیقه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بعضی ها شایعه بعضیها بدگمان شدند الله عز و جل ذکر کرد دادن در سوره نور لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیره چرا وقتی که شنید نسبت به مؤمنین مؤمنون و مؤمنات نسبت به همدیگر ظن خیر نداشتند چرا گمان بد کردی اینهایی که گمان بد کردند اینا توبه بکنند خداوند در ادامه میفرماید چرا گمان نیک نداشتید و چرا نگفتید که هذا افکٌ عظیم این گناه بزرگی هست چرا چینین گمانی نکردی چرا چینین نگفتی لذا اون کسی که انسان نسبت به او بدگمان هست اگر محل گمان بد نیست انسان بی خود گمان بکند این گناه کبیره هست اگر محل گناه باشد امکان داره محل بدگمانی باشد و انسان سوی زن بکند این هم گناه هست اما گناه متوسطی است. مثلا نسبت به مسلمانی شما میبینید خود به خود مشکوک میشید نسبت به یک مسلمان مشکوک میشید نباید انسان بدگمان بشه ظنو بالمؤمنین خیره نسبت به مؤمنان شما گمان خوب داشته باشید یک کسی رو میبینی خونش رفت و آمده میگه حتما این مبتلا به فساد میشه نباید اینطور انسان گمان بکند و رسول الله فرمود ایاکم و ظن فا اینه ظن الحدیث از گمان بپرهیز چون گمان بد بدترین دروغ هست و بزرگترین دروغ هست پس انسان نباید بدگمان باشد و اگر انسان بدگمان باشد این بدگمانی باعث گناه است اما عرض کردم اگر محل بدگمانی نیست و بدگمان هست این گناه کبیره است اگر امکان دارد انسان گناه چی گمان بد می کند بعضی از گمان ها را به همین خاطر خدا فرمود ان بعض از تمام گمان ها نه خیلی جاست که این گمان و زن برای ما لازم هم هست هر زننی و هر گمانی گمان بد نیست یک استلاحی فقها دارن به نام زن غالب زن غالب خیلی جاها لازم هست شما یه جایی گرفتار شدید نمیدونید قبله کدوم طرف هست اونجا گمان کنید کدوم طرف هست زن غالب شما دلیل شما هست راهکار شرعی شما است در نماز نمیدونی چند رکعت خواندم دو رکعت خواندم سه رکعت خواندم اونجا فکر کن زن غالب تو چیه غالباً گمان تو چی میگه به همون عمل کن اون دلیل شرعی برای تو میشه پس همه گمان ها بد نیستند ان بعض زن اسم بعضی از گناهان بعضی از گمان ها گناه هستند ولا تجسسوا ولا تجسسو یعنی تجسس نکنید تجسس یعنی چی یعنی در پی عیوب مردم نباشید چی داری با مردم تو برو به فکر اصلاح خودت باش تفسیر مذهبی میگه لا تجسسو یعنی لا تبحثو عن عیوب الناس. عیوب مردم را جستجو نکن این چی میخوره از کجا میخوره باقی رفت و آمد داره به ما ربطی نداره و لا تتبعو اوراتهم دنبال اورات مردم یعنی مسائل مخفی مردم نباشید چیزی را که خدا مخفی کرده شما خودتون دنبال بکنید بذارید مردم زندگیشون را بکنن مردم کارشون را بکنن هم به مردم بدگمان نباشید گمان نیک داشته باشید حتما یک مرد مومنی از داری کار میکنه داری کار درست و مشروع انجام میده چرا تجسس بکنین؟ البته بعضی از صورت‌های تجسس برای اهل حکومت جایزه که وقتی که احساس بکنند از اینها شر و zarar به جامعه میرسه اون وقت میتونن دنبال کنند ببینن که چیکار میکنه اما عموماً نه به خصوص گفتم برای تجسس اگر کسی میخواد دنبال مردم بشه در در معابر عمومی در جاهای عمومی تو کوچه تو خیابان میتونه دوربین نصب بکنه میتونه دنبال بکنه مردم را اما نصب کردن دوربین شنود در خانه های مردم اونجا که محل خصوصی مردم هست حتی برای اهل حکومت هم درست نیست جایز نیست وقتی که در اون حریم خانهش هست بزار هر کاری وقتی که خارج میشه مشکوک هستی خب دنبالش بکن اینا برای بقیه مردم فقط برای اهل حکومت بنابر این الله می فرماید الا تجسسوا دنبال عیوب مردم نباشید در حدیثی هست که کسی که در پی ایوب مسلمانان است هی سعی میکنه عیب ای این را با خبر بشه عیب اون را با خبر بشه می فرماید الله عز وجل عیوب خودش را ظاهر می کند و رسوائش می کند الله تعالی چکار می کند ایوب او خود اون انسان را ظاهر می کند او را رسوا می کند کسی که دنبال عیب مردم از سر انسان اینقدر قدر مریض القلب باشه که دنبال اشکالات ایوب مردم بزار مردم زندگی می کند به مردم حسن زنده داشته باش گمان نیک داشته باش اگر این قدرتو دنبال بکنی خداوند برای خودتو مشکلی پیدا میکن و همچنین علماء گفتند در بحث جزئیات وقتی که جای خواب هستید و مردم دارند صحبت میکنند خود را به خواب زدن که احساس بکنند این چی هست این خواب هست اینم نوعی تجسس هست خود را انسان به خواب میزند و حرف مردم را گوش میکند و گاهی حس اینا همه هستند تو جامعه باید گفته بشوند. گایی هست کسی با کسی تلفون، تلفونی حرف می زند اون طرف گوشی را برداشته ولی متوجه نیست اون طرف با زن و چش مشغول است با شریکش مشغول است با هر کسی مشغول است این گوش میکنه چی داره میگه یا تلفن را میخواد قط کنه و فراموش میکنه قط بکنه این گوش میکنه بعدا چی میخواد بکنه اینا همه تجسوس هستند این ها از یوب مردم خود را آگاه کردن هست. نباید انسان دنبال چنین اویوب باشد الله می فرمد ولا تجس. دنبال یوب مردم نباشید زندگی خودتون را بکنید و سوم ولا یغتب بعضکن بعضا. بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند. غیبت کردن هم از گناهان کبیره هست و از گناهانی هست. که منجر به جنگ و درگیری میشه همه این گناهان عرض کردم اینها اسباب درگیری هستند، اسباب اختلاف هستند. بعد از این که خداوند فرمود اختلافات را از بین ببرید و خاموش کنید آتش های جنگ را لذا اینجا میفرمه اسباب را هم از بین ببرید اما غیبت کردن جنان گناه بزرگی هست که خداوند خودش برایش مثال بیان فرموده و مثال غیبت که در قرآن آمده تکان دهنده است. الله می فرمند اون کسی را که غیبت میکنی برادرت هست اون برادر که اینجا نیست مثل اون برادری هست که اینجا هست و مرده مرده وقتی که مرده باشد از خود دفاعی نمیتونه بکنه و اگر گوشتش را بخوری هم به او او احساس نمی کنه چون مرده هست. احساس از بین رفته. ولی این گوشت خوردن انسان تصورش را هم نمیتونه بکنه. بزرگترین جنایت و گناه هست. لذا اون کسی که انجانیست و داری راحت پشت سرش حرف می زنی و می خندی و مردم را می خندانی این مثل این هست که او برادرت مرده جلویت هست داری گوشتش را می چه از این شنیتر میتونه باشه؟ خیلی خطرناک هست و متاسفانه غیبت یک گناهی هست که عمومی هست عام و خاص گرفتار هستند شاید اگر از هزار نفر نمیگم از صد نفر یکی از هزار نفر اگر یکی احتیاط میکند مردم راحت غیبت میکنند لذا باید از غیبت جدا پرهیز بکنیم جدا دوری بکنیم الله میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت نکنا بعضی از شما بعضی را ای یحب احدکم تقبیه الغیبه بالمثال قباحت غیبت با مثال الله بیان می فرماید. ایو حبو احدکم آیا دوست می دارد یکی از شما ای لحم اخیه این که بخورد گوشت برادر اشرا که اون برادر مرده هست فکرهتمو شما این را نمی پسندید شما از این تنفر دارید طبعا بنویسید طبعا از این چیز تنفر دارید پس این قدر زشته این قدر قبیح هست، اینقدر کریح هست، غیبت نکنید. و تقو الله بعد از این همه چیز، شش چیز خدا بیان فرمود. مسخره نکنید، تعنه نزنید، القاب بد برای هم دیگه نیاندازید، سویزن داشته نباشید، هجسوسی هم دیگه نکنید ایوبی هم دیگر خودتون را آگاه نکنید و غیبت هم دیگه نکنید بعد از این ششته خدا می فرمید واتقو الله این نسخه عمل است ای مسلمان اگر می خواه عامل باشی اول تقوی را پیش کن در زندگیت خود تقوی بیار خدا ترس باش خدا ترس که باشی انکارها را نمی کنی واتقو الله این اللہ تواب الرحیم و اگر اجتابهال انجام دادی اشتباه کردی توبه بکن اینجا ترغیب توبه است ان الله تواب الرحیم همانا الله توبه پذیر هست به کثرت توبه را پذیرد رحیم مهربان هست لطف مهربانیش مهربانی اشبر بندگانش هست خب این 6 قانون بود یا ایها الناس این هفتمین قانون است در هفتمین قانون این مطلب میآید که انسانها با هم برادر و برابر هستند. هیچ کسی بر دیگری برتری ندارد. کسی چون عرب هست چون عجم هست، فارس هست چون ترک هست چون کرد هست نه این قومیت ها ملاک برتری نیستند. چون سادات از اولاد پیغمبر است به خاطر سعدات هم کسی برتر نمیتونه باشه ملاک برتری فقط و فقط خدا ترسیه است خدای عزواجل یکی را از این قوم آفریده یکی را از اون قوم آفریده این انتخاب و اختیار خدا است لذا در این خداوند خودش اعلام میکند من, من شما را افضلتر و برتر از این جهت قرار ندادم لذا مردم حق ندارن بخاطر این نوع ها اظهار برتری کنند می فرماید اینکه شما را از فلان قوم قرار دادم از فلان قبیله قرار دادم از فلان شعب قرار دادم خاطر اینکه بشناسی هم دیگر را یا ایوها الناس ای مردم اینا خلقناکم من ذکر و انثا ما آفریدیم همه شمارا از مرد و زن از پدر و مادر مرد و زن و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ما شمارا شعوب شعوب شعوب, شعوب قرار دادیم و قبیله قبیله شعب گسترده ترو بالاتر از قبیله پاین است چرا اینطور قبیله قبیله قبیل قوم قوم تیره تیره لتعارفو تا هم دیگر را بشناسید این آقای فلان هست از فلان قوم هست از فلان فلان زبان را دارد تا شناخته بشه و بس دیگه افضل بودن برتر بودن معیار برتری تقوا و خدا ترسیه هر که ایمانش قوی تر هر که تقوایش بیشتر او بهتر است ان اکرمکم عند الله اتقاکم همانا اکرم اکرمت شما بهترین شما افضل ترین شما پیش خدا با تقوا ترین شماست یعنی پیش شما باید هم همین طور باشه از نگاه شما هم هر کسی با تقوا بود او افضل است ان الله علیم خبیر تقوا هم با ادعاء و با ظاهر درست نمیشه کسی ظاهرش را متقی درست کنه این ہمنا خدا تعالی علیم هست او علم دارد او میدان تقوا متقی کیه من شما نمیتونید فیصله بکنیم که این با تقواتر است خبیر او خبر دارد که انسان با تقوا کیه اللهی که از درون قلب خبردار من شما به ظاهر نگاه میکنیم لذا ان الله علیم خبیر این بخش اول سوره تا اینجا تمام شد در این بخش خداوند اززا و جل اموری را بیان فرمود قوانین و زوابطی را بیان فرمود که در این قوانین و ضوابط چیه؟ نظم و نسق زندگی ما یعنی یک زندگی راحتی میتونیم داشته باشیم اگر همه ما انسان ها پایبند به اینها باشیم احترام هم دیگر سوی زن داشته نباشیم بد نگیم و بد نکنیم، مسخره نکنیم، لقب نیاندازیم، غیبت نکنیم، همین زندگی تبدیل به بهشت میشه. همین دنیا تبدیل به یک زندگی راحت میشه. لذا الله عزوجل اینها را بیان فرمود تا ما دنیا خوبی داشته باشیم. با وجود این صفات زندگی راحتی داشته باشیم. در بخش دوم ارز کردم زجر حس بر منافقین، بعضی از منافقان که مننت میگذاشتند بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم خداوند اونها را مورد عتاب و مورد سرزنش قرار میده گروهی بود به نام بنو اسد ابن خزیمه اینها از جای دور آمده بودند دور از مدینه زندگی می‌کردند اینها با کسی کار نداشتند و در این جنگ ها و درگیری ها هم هیچ نقشی نداشتند اما وقتی که قحط آمد و مدتی باران نبارید اینها متأثر شده از قهت و آمدن مدینه مدینه شهر بود آبادی بود اینجا خدمت آن حضرت آمدن میخواستن در کنار رسول الله زندگی بکنن لذا اظهار ایمان کردن گفتم ما مسلمانی خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اشکال نداره همینجا زندگی کنید اما بعدا انتظارات و توقعات بیش از عدی داشتند قنایمی می آمد منافیکی می آمد لذا اینها انتظار داشتند بینها زیاد داده بشه و مننت گذاشتم بر آن حضرت صلی الله علیه گفتم ببینی همه قبایل همه گروهها با شما درگیر شدن جنگید ما هیچ ن جنگیدیم ما در یک جبهه هم در مقابل شما نبودیم الان آمدیم ایمان آوردیم چرا ما بخشی نداریم بهره ای نداریم سهمی نداریم الله تعالی اینها را برای آن حضرت توضیح میده قالت الاعراب آمنا اعرابی ها میگوین دیاتی می ما ایمان آوردین قل لم تومینو اولا شما بفرمی انها که لم تومینو شما ایمان نای ایمان نام کیفیت قلبی هست اینکه بظاهر انسان اطاعت بکند این را میگه اسلام فرق ایمان و اسلام همینه که اسلام با اعزا و جواره هست صف نماز در وقت روزه روزه گرفتن در وقت عج عج کردن در وقت جهاد جهاد کردن اینا اسلامه ایمان در درون قلب است اون را خدا می دونه لذا الله که از قلب می دونه او می فرماید قل لم تو منو ایمان ایمان نیاوردید ولیکن قولو اسلم نام اما شما بگویید اسلام نام، اسلام قبول کردید یعنی ظاهرا شما منقاد و هستید. و لما يدخل الیمان في قلوبكم تا حال ایمان داخل نشده در دل های شما لذا اگر می خواهید ایمان بیاورید در استهد دل ایمان بیاورید اطاعت خدا و رسول کنید و تطيع الله و رسوله اگر اطاعت خدا و رسولش را بکنید لا يلدكم من اعمالكم شیئا خداوند کم نمی کند از اعمال شما چیزی یعنی اجر و پاداش اعمال تو کم نمیشه ان الله غفور رحیم این البته همان خدای عزوجل بخشاینده و مهربان هست حال خدای تعالی در مقابل این اعرابی ها صفات مؤمنین کاملین را بیان می کامل کیا هستند اینهایی که در کنار رسول الله جانانه می جنگند اول ایمان آوردند بعدا شک نداشتند بعداً با مال و جان جهاد کردن انهایی که از هیچ فداکاری دریغ نمی کنن هم الصادقون صادقون هم همین آسدن قبلاً خدمتش ما کردم که صادقون لقب صحابه هست در قرآن اولئیک هم الصادقون کسی میخواد با راست باشد یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین نه با راست گویان هم را باشد بچسبت به دامن اصحاب چون این صادقین هستن ما انا علیه و اصحابی یعنی مسیر من و اصحاب من را ببرد ببین خداوند اینها را چی می فرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله جزئی نیست که مؤمنان آنهای هستن که ایمان آوردن به خدا و رسول ثم لم يرتابو سپس مثل شما شکنکردن در باطن و جاهدو با اموالیم و انفسیم في سبيل الله و با مالشان و جانشان جهاد کردن در راه الله برای لاي كلمه الله جنگیدن اولائک هم صادقون این جماعت این گروه استن صادقون پس یکی از مصادق صادقین مجاهدین استند کسانی که با مال و جان در راه خدا جهاد می کنند و از کیان اسلام و مسلمین دفاع میکنند. کنند اولائی که هم صادقون در این زمان اگر کسی می خواهد مصداق صادق, مصداق صادق را پیدا کند این گروه هستند، این جماعت هستند بعد خداوند سرزنش می عتاب میفرماید می فرماید این گروه را از اعرابی ها که شما آمدید دینتون را بر ما به رخ ما میکشید نت میگذارید. قل اتعلمون الله بدینکم آیا خداوند را شما خداوند را اطلاعات میدید نسبت به دین خودتون اتعلمون الله يعني بخدا یاد میدید دین خودتون را یا به روح خداوند میکشید دین خودتون را و برای خدا ظاهر میکنید که ما دین داریم خدا از ظاهر و باطن میفهمت نه ظاهر و باطن شما بلکه والله یعلم ما في السماوات و ما في الارض خدا هر چی که در آسمان ها و در زمین است همه را می فهمد چه برسد به دین شما، والله به کل شیئن علیم، خداوند به هر چیز علیم هست، آگاه هست، دانا هست، لذا خداوند از شما می که شما دین دارید یا ندارید، و باست در ادامه عطاب و سرزنش، خدا می فرماید، ای محمد صلی علیه و وسلم، بر شما مننت می بر شما مینت میگذارم و به روخ شما میکشند که ان اسلمو اسلام آوردند ظاهرا تابع شما هستند قلتم نو علی اسلامکم بگو بر من اسلام خودتون را به روخ من نکشید مننت نگذارید بر من بل الله یمنو علیکم بلکه الله عز و جل بر شما احسان کرده و احسان می فرماید که ان هداکم للايمان شما را راهنمایی فرمود و هدایت فرمود به مسیر ایمان این کنتم صادقون و اینم به شرطی که شما صادق باشید یعنی مؤمن واقعی باشید اگر مؤمن واقعی باشید پس خدای تعالی بس شما لطف کرد نه اینکه شما احسان کردید هیچ وقت انسانی چنان مننتی در زندگی خودش نگذارد که مننتش بر خدا باشد مننتش بر رسول خدا باشد بعضی از انسانها هستند نادان نمیفهمند. فکر میکنن که بالاخره ما اگر درکاتی میخانیم ما اگر طاعت و بندگی میکنیم باید مقبول اندالله بشیم بعضی وقتها کسانی هستن که گلایه میکنن میگن من تمام شبهای قدر بیدار بودم چرا خدا دعای من قبول نکرد یعنی لطف کردی علی بالله بر خدا که همه شبها بیدار بودی برای خودت بیدار بودی مننت منه که خدمت سلطان همی کنی مننت منه که خدمت سلطان همی کنی مننت شناس از او که به خدمت گماشتت اون سلطان و پادشاهی که تو را به خدمت قبول کرد تو کاخ رئیس جمهوری گذاشت که جز اون کادر بشی تو همیشه مننت او را بر خود احساس کن که به من لطف کرد اینجا مرا کار گرفت نه این که من دارم برایش هر روز چایی میارم من چقدر برای سلطان و پادشاه دارم احسان میکنم لذا اگر درکاتی میخانی توفیق روزی داری توفیق ذکری داری مننت نگذار که من این خدا را ذکر کردم نه، این توفیق را خدا به تو داد لذا یمنون علیکا ان اسلمو بر تو مننت میگذارن که بظاهر مسلمان شده اسلام کوم بر من اسلامتون رب مننت نگذارید بل الله علیکم خدا بر شما احسان دارد و احسان می ایمان صادق اگر واقعا صادق باشید و واقعی باشید خدا در این مسیر هدایتتون کرد پس ممنون خدا باش شاکر خدا باش و احسانات خدا را همواره بر خود تصور کن ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون در پایان سوره الله عزوجل مسئله توحید را یک بار دیگر توحید فی العلم را ذکر می‌فرماید قبلا در آخر سوره محمد خواندیم فعلا انه لا اله الا الله اینجا خدا می‌فرماید ان الله يعلم غيب السماوات بدون شک خداوند مغیبات آسمان ها و زمین هر چی در ها و زمین مخفی هست همه و را الله می‌داند والله بصیر ما تعملون خداوند به آنچه که شما عمل می‌کنید این خاصه باری تعالی است نه تنها آسمان ها و زمین نسبت به اعمال شما بندگان هم خداوند بصیر و بینا است این سوره مبارکه حجرات بود که از مدنی بود و الله عز و جل در این سور قوانین و زوابط را بیان فرمائید.